کتاب آخ بازخانی مقتل حسین ابن علی علیه السلام امر ابن حجاج بانگ بر آورد که ای بی میدانید که با که قتال می کنید با پهلوانان این شهر گروهی تن به مرگ داده آستین بر جهان افشانده دست از جان شسته هرگز به جنگ تن به تن راضی نشوید که گروهی اندکند آفتاب عمرشان به دیوار آمده کار پس گوش میفگنی و اگر به سنگ انداختن هم باشد آنها را توانید کشت عمر سعد گفت راست گفتی رأی رأی توست و سوی مردم پیغامبر فرستاد که هیچ کس به جنگ تن به تن حاضر نشود شمر نزل زلجوشن در جناه چپ ترکتازی کرد و اصحاب ابی عبدالله پایدارین بودند و با نیزه به هم آویخت. خود امر حجاج که بر میمنی عمر سعد بود بر حسین بتاخت در کنار فرات. چون نزدیک اصحاب حسین رسید گفت ای اهل کوفه از فرمان امیر بیرون نروید و از جماعت جدا نگردید و در کشتن آن از دین بیرون رفت و به خلاف سلطان برخاست شک به خود راه مدهید حسین گفت ای امر ابن حجاج مردم را به قتال من می میکنی ما از دین بیرون رفته ایم و شما ثابت مانده اید به خدا قسم وقتی که جان شما گرفته شد و با این اعمال درگذشتید، خواهید دانست کدام یک ما از دین بیرون رفته و به سوختن در آتش سزاوارتر است و ساعتی نبرد کردند. مسلم ابن اوسجه کارزاری سخت کرد و این رجز می‌خواند: اگر میپرسید که کیستم من شیر بیشم از شاخه قومی از مهتران بنی اسد آن کس که به ما ستم کند از راه راست روی تافته و به دین خدای کافر است. پس سخت در نبرد بکوشید و بر بلا شکیبایی نمود تا بر زمین افتاد و امر ابن حجاج بازگشت. وقتی گرد و غبار فرو نشست ناگهان مسلم را بر خاک افتاده دیدند. حسین سوی او آمد هنوز رمگی داشت. گفت ای مسلم، خدای بر تو ببخشاید فمن هم من قضا نه به و من هم من ينتظر و ما بدلو تبدیلا بعضی از مؤمنان جان باختند بر سر عهدی که با خدا بسته بودند و بعضی چشم راه آن جان باخدنند و عهدشان بی هیچ تغییری همان است حبیب ابن مظاهر نزدیک او شد و گفت افتادن تو مرا سخت دشوار آید مسلم، دلت به بهشت خوش باد مسلم آهسته گفت خدا دل تو را خوش کند به نیکی حبیب گفت اگر نه آن بود که من در پی تو بودمی و پس از ساعتی به تو پیوستمی دوست داشتم که مهم خیش را با من گویی و وسیعت کنی تا به جای و پاس حرمت همدینی و خیشی که سزای توست نگاه دارم مسلم اشاره به حسین کرد و گفت رحمک الله، تو را به این مرد وسیعت می یاری وی کن تا پیش روی او کشته شوی گفت به پروردگار کعبه که چنین کنم، مسلم کنیزکی داشت، بانگ زد، دریغ پسر اوسجه را، دریغ آقای مرا، اصحاب امر ابن حجاج فریاد زدن مسلم ابن اوسجه اصدی را کشتیم شبست با چند تن از آنها که گرد او بودند گفت مادرتان داغ شما بیند و به سوگتان نشیند خودی را به دست خود میکشید و زیر دست غیر خود زبون میشوید از کشتن مانند مسلم ابن اوسجه شادمانی میکنید قسم به خدایی که به دین او گرویده در میان مسلمانان از او موقفهای بزرگ دیدم. روز جنگ سلق در آزربایجان دیدمش پیش از آن که مسلمانان سفارایی کنند شش مشرک بکشت. آیا چون او مردی کشته میشود و شما شادی میکنید و مسلم را مسلم ابن عبدالله جنابی و عبدالرحمن ابن ابی خشکاره به جلی عبدالرحمن ابن عبدالله بیرون آمد و حسین وی را به قتال ازن داد پس از وی یحیی ابن سلیم مازنی بیرون آمد پس از وی قررت ابن ابی قرره غفاری شست و هشت مرد بکشت پس از او انس ابن حارس کاهلی انگاه مالک ابن انس کاهلی بیرون آمد چهارده مرد بکشت و بعضی گویند هیجره تن پس از وی انس ابن حارس کاهلی خروج کرد و می گفت همه میدانند که من از قبیله‌ایم که آفت جان حریفان خیش است یاران من چون شیر به بر این دشمن بدانید که آل علی پیروان خدا و آل ابوسفیان پیروان شیطانند پس از وی امر ابن مطاع جعفی بیرون آمد و اصحاب حسین کارزاری سخت کردند و سواران ایشان به هر سوی از سواران اهل کوفه میتاختند صفوف آنها می دریدند و میشکافتند چون اوروته ابن قیس امیر سواران اهل کوفه بدید در صف سواران از هر سوی خلل میافتد عبدالرحمن ابن حسین را نزد عمر سعد فرستاد و گفت میبینی سپاه ما را از این اندک مردم چه میرسد مردان و تیراندازان بفرست عمر به شبع ابن ربی گفت تو می‌روی شبع گفت سبحان الله من پیرمرد شهر و سرور همه این مردمم هم. مرا با تیراندازان میفرستی، دیگری را غیر من نیافتی که کفایت این کار کند و همیشه در شبع کراهت از این جنگ مشاهده میشد. عمر ابن سعد حسین ابن تمیم را بخواند و با 500 تیرانداز و گروهی از زبدگان بفرستاد آنها نزدیک حسین و اصحاب او رسیدند و تیر باریدند چنان که همه اسبان را پی ببریدند و همه پیاده ماندند علی ابن حسین گفت چون کار بر حسین سخت شد اصحاب وی دیدند او برخلاف ایشان است هرچه کار دشوارتر می شود رنگ آنان برگشته و پریده و دلهاشان لرزان و ترسان است اما او و بعضی از خواص یاران او رنگشان برافروخته تر جوارهشان آرام و قلبشان مطمئن تر گرده. با یکدیگر میگفتند می گفتند، نمی بینی چگونه در روی مرد می خندد از مرد بیم ندارد حسین یاران را می گفت شکیبایی کنید ای بزرگ زادگان که مرگ نیست مگر پلی که شما را از رنج و سختی به باغهای گشاده و فراخ و نعیم جاودانی برد کیست از شما که نخواهد از زندان به کوشک منتقل گردد و مرگ برای دشمنان شما چنان است که کسی از کاخی به زندان و عذاب ربد جون مالک غلام ابیزر غفاری بیرون آمد و او بندهای سیاه بود. حسین به او گفت، تو را مرخص کردم که در پی ما آمدی. آفیت جوی، مبادا در این راه آسیبی به تو رسد. جون گفت، یبنه رسول الله، من در فراخی کاسلیس شما باشم و در سختی شما را تنها گذارم؟ به خدا قسم که بوی من ناخوش است و حسب من پست و رنگم سیاه بهش را بر من دریق داری تا بویم خوش شود و جسمم شریف و رویم سفید نه به خدا سوگند از شما جدا نگردم تا خون سیاه من با خون شما آمیخته شود به تال کرد بیست و پنج مرد را بکشت و کشته شد حسین بر سر او بیست و گفت خدایا روی او را سفید گردان و بوی او را خوش کن و هشر او را بانیکان قرارده و او را با محمد و آل محمد آشنا و معاشر کن و مردم در آن میدان آمدند و کشتگان را به خاک سپردند جون را پس از ده روز دیدند بوی مشک از او شنیده میشد پس از وی عنیس ابن معقل اسبهی به میدان آمد بیست و چند تنکش تا کشته شد یزید بن زیاد اب الشساسا بر سر زانون نشست پیش روی حسین هشت تیر افکند و او تیراندازی ماهر بود و هر تیر که افکند گفت من پسر بهدله هستم آنها سوارند و دیگر مردم پیاده حسین دعا میکرد خدایا تیرهای وی را به آماج رسان و پاداش او را بهشت گردان و چون تیرها را بیافکند برخاست و گفت از این تیرها تنها پنج تن بر زمین افتاد و مرا محقق آید که پنج تن بکشند. و رجز او این بود. من یزید پسر مهاجرم شجاعتر از شیر درنده ام خدایا من حسین را یاری می کنم و بیزارم از ابن سعد و سپاهیانش و یزید ابن زیاد ابن مهاجر از آنها بود که با عمر سعد آمده بود و چون شروط حسین را رد کردند به جانب او شتافت. کارزار کرد تا کشته شد آنگاه حجاج بن مسروق معزن حسین به میدان آمد پنج مرد به و کشته شد پیوسته از اصحاب حسین کشته میشد و چون یک تن یا دو تن از آنها به شهادت می رسید پدیدار بود و سپاه عمر سعد بسیار بودند و هر از آنها کشته می شد به نظر نمی آمد ابوسمامه ساعدی حسین را گفت یا ابا عبدالله جانم فضای تو باد این مردم را بینم به تو نزدیک شدند و تو کشته نشوی تا من پیش تو کشته شوم. دوست دارم که این نماز پیشین که وقت آن نزدیک است گزارده به لغای پروردگار رسم حسین سر برداشت و گفت نماز را به یاد آوردی خدا تو را از نماز گذاران و زاکران محسوب گرداند آری اینک اول وقت نماز است آنگاه گفت از این مردم بخواهید دست از ما بدارند تا نماز گذاریم حسین ابن تمیم گفت نماز شما مقبول نیست حبیب ابن مظاهر گفت ای همار گمان بری که نماز آل رسول الله مقبول نیست و نماز تو مقبول است حسین بر آنها تاخت و حبیب ابن مظاهر به مقاتلت او بیرون شد و روی اصل او را به شمشیر بزد و بخست و حسین را بر زمین انداخت او آمدند و او را رها کردند و حبیب این ابيات گفتن گرفت ای که بد گوهر و بینی رو مردمی اگر ما به شماره شما بودیم یا نیمه شما بودیم شما پشت می کردید و می و هم در آن روز این رجز می خاند. من حبیبم و مظاهر پدرم سواری دلاورم چون جنگ شعله بکشد گرچه شما به شما از ما بیشید و گرچه قرق ساز و سلاحید ما به پیمانی که بستیم پایدار و از شما شکیباتریم دلیل های روشن داریم برای جنگ با شما و تقوایی داریم که شما ندارید و شما در پیشگاه خدا عذری ندارید و نبردی سخت کرد و شست و دو مرد را هلاک کرد مردی از بنی تمیم که او را بودیل ابن سریم میگفتند بر پیکر او نیزه فرو بود حبیب بر زمین افتاد خاست برخی زد حسین ابن تمیم بر سر او باز شمشیری زد بی افتاد آن مرد تمیمی فرود آمد و سر او جدا کرد حسین را سخت دشوار آمد و به شکست و گفت از خدای چشم دارم بر خود و یاران خود که مرا حمایت کرده و گفت یا حبیب خدا برکتت داد چه برگزیده مردی بودی یک شب ختم قرآن میکرد حسین ابن تمیم گفت من در کشتن حبیب با تو شریک بودم بدیل ابن سریم گفت والله غیر من کسی او را نکشت حسین گفت آن سر را به من دبرگردان اسب خود بیاویزم تا مردم ببینند و بدانند در کشتن او شریک بودم پس از آن بگیر و نزد و و الله بر که حاجتی به آن انعام که تو را دهد ندارم او نپذیرفت پس از مشاجرات خیشان در میان افتادند و بر همین اصلاح کردند سر حبیب را به دو داد و برگردن اسب بیاویخت و در لشکر بگردید و باز به اولی داد چون به کوفه آمدند سر را برگردن اسب ویخت و روی به قصر ابن زیاد آورد قاسم ابن حبیب او را بدید و آن وقت کودکی نابالغ بود با آن سوار بیامد چون سوار داخل قصر می شد, او هم داخل میشد و چون بیرون می آمد, او هم بیرون می آمد. مرد به بدگمان شد و گفت ای پسرک من چرا در پی من افتاده ای? گفت هیچ گفت البته بی موجبی نیست با من بگوی گفت این سر که با تو سر پدر من است. میدهی دهی تا به خاک سپارم؟ گفت ای پسرک امیر راضی نمی شود و من می خواهم به کشتن آن مرا پاداش نیکو دهد. آن پسر گفت خدا تو را پاداش ندهد مگر بدترین عذاب. به خدا قسم آن را که کشتی به از تو بود و بگریست. آن پسر صبر کرد تا بالغ شد و هم می نداشت غیر آن که در پی قاتل پدرش رود. تا قفلتی از او بیند و به قصاص پدرش بکشد چون زمان مصعب ابن زبیر شد مصعب به جنگ با جمعیرا رفت قاسم ابن حبیب در سپاه رفت قاتل پدر را در چادری دید پاس او می داشت تا که قافل باشد نیمروزی او را خفته یافت به چادر او رفت و باتیق بزدش تا در جای سرد شد ابو ثمامی ساعدی پسر می داشت دشمن وی بود در لشکر عمر سعد او را بکشت آنگاه نماز ظهر را بگذاردند نماز خوف حسین زهیر بن قین و سعید بن عبدالله را فرمود جلو ایستی تا من نماز پیشین گذارم آنها جلو ایستادند و با یک نیم از اصحاب نماز خوف گذارد سعید بن عبدالله حنفی پیش حسین ایستاد و خیشتن را هدف تیرها کرد هرگاه تیر از جانب راست یا چپ میآمد پیش آن می‌ایستاد و پیوسته بر او تیر افکندن تا بر زمین افتاد. می می‌گفت: خدایا این مردم را لعنت فرست چنانکه که عاد و سمود را فرستادی. خدایا سلام مرا به رسول خود برسان و آنچه مرا رسید از رنج این ها بگوی که من در یاری فرزندان رسول پاداش از تو خواهم و درگذشت و سیزده زخم تیر بر وی یافتند سوای زخم شمشیر و نیزه و بعضی گفتند که حسین نماز فرادا کرد به ایمان تا روز سخت به جنگیدند و سپاه ابن سد حمله نمی توانستند کرد مگر از یک جهت چه اصحاب حسین سراپرده ها نزدیک یکدیگر زده بودند و از بین خیمه ها راه عبور نبود و همه مردان در یک طرف بودند چون عمر ابن سعد این بدید مردانی چند بفرستاد تا آن خیام را از راست و چپ برکنند و از همه طرف بر مردان احاطه کنند پس اصحاب حسین 3 و چهارتن در میان هر دو خیمه ایستادند و چون یکی از سپاهیان ابن سعد میآمد و به کندن خیمه و غارت کردن مشغول میشد بر وی حمله میکردند و او را میکشتند یا از نزدیک تیر میانداختند و پی اسبش میبریدند عمر سعد گفت آتش در خیمه ها زنید، داخل خیمه ها نشوید و آن را از جای نکنید، آتش پش بیاوردند و آتش زدن گرفتند، حسین گفت بگذارید بسوزانند، وقتی آتش گرفت نمیتوانند از آن بگذرند و سوی شما آیند، و همچنان شد که گفته بود، شمر ابن زلجوشن به و نیزه بر خرگاه حسین فرو برد و فریاد زد آتش بیاوری تا این خیمه ها را با اهلش بسوزانی زنان چیون کنان بیرون دویدند حسین بانگ برو زد ای پسر زلجوشن آتش میخواهی تا سراپرده اهل مرا بسوزانی خدات آت به آتش بسوزاند زهیر نقین قین با ده کس از اصحاب خود بر او بتاختند و آنها را از خیمه ها دور کردند و عباغره زبابی را بیفکندند و بکشدند و او از همراهان شمر بود. اهل کوفه چون این بدیدند بسیار بیاری شمر آمدند. زهیر ابن قین قتال کرد قتالی سخت و رجز خواندن گرفت. من زهیرم پسر قین، با شمشیر شما را از دور حسین نوه پاک خوی پیامبر می و دست بر دوش حسین میزد و و می صد و 120 مرد بکشت کسیر ابن عبدالله شعبی و مهاجر ابن تمیمی تاختند و او را کشتند حسین پس از کشته شدن زهیر گفت خدا تو را از رحمت خود دور نگرداند و قاتل تو را لعنت کند چنانکه که لعن فرستاد بر آنها که به صورت بوزینه و خوک مسخ شدند امر ابن قرزه انصاری بیرون آمد عزن خواست و حسین او را ازن داد پیش روی حسین نبرد کرد و سخت بکوشی تا گروهی بسیار از سپاه ابن زیاد بکشت و جلو دشمن را گرفته بود و جهاد میکرد. هیچ تیر به جانب حسین نمیآمد مگر دست را سپر آن میکرد. و هیچ شمشیر نمی آمد مگر جان خود در پیش می داشت پس حسین را آسیبی نرسید تا آن مرد را زخم های سنگین رسید روی به حسین کرد و گفت آیا وفا کردم؟ گفت آری تو زودتر از من به بهشت روی سلام مرا به رسول خدا برسان و با او بگوی من هم در دنبالم برادر امر ابن قرزی انصاری علی در سپاه عمر سعد فریاد زد، یا حسین، یا کذاب ابن کذاب، برادر مرا بیراه کردی و فریب دادی تا بکشتی حسین گفت، خدای عزوجل برادر تو را گمراه نکرد، او را راه نمود و تو گمراه شدی. گفت، خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم یا در پیش تو کشته نشوم و پتوخت نافع ابن هلال جملی راه را بر او بگرفت و نیزه بر او فرو برد و بی افکندش یاران او آمدند و او را نجات دادند و پس از آن علاج کردند تا زخمش به شد نافع ابن هلال نام خود را بر تیرهایش نوشته بود و تیرهایش زهراگین بود می میاندازم این تیرها را که نشاندار است ترس بی فایده است تیرها زهراگین است و پرران میرود و زمین را پر می کند و پیوسته تیر می افکند. تا وقتی دیگر تیر به ترکش نداشت دست به تیغ برد و از نیام بیرون کشید رجز خاندن گرفت من جوانی هستم یمنی دینم دین حسین است و علی بکشیدم به آرزویم رسیدم و پاداش می بینم دوازده تن از اصحاب عمر سعد را بکشت. غیر غیرانها که خسته کرد او را چندان زدند که بازوانش بشه و از پای درآمد. آمد. شمر ابن زلجوشن او را بگرفت. به یاری همراهان خود او را کشان کشان بردند تا نزدیک عمر سعد. عمر سعد به او گفت ای نافه وای بر تو تو را چه بران داشت که با جان خود چنین کنی؟ گفت خدا میداند که من چه خواستم و خون بر ریش او روان بود و میگفت من دوازده کس از شما بکشتم غیر از مجروحان و خیشتن را بر این جهاد ملامت نمی کنم و اگر دست و بازو داشتم مرا دست گیر نمی کردی. شمر به عمر گفت او را بکش عمر گفت تو را آوردی اگر خواهی هم تو را بکش پس شمشیر بکشید نافع به او گفت اگر مسلمان بودی بر تو بزرگ می آمد که خون ما در گردن تو باشد و به لقای پروردگار روی. پس سپاس خدای را که مرگ ما را به دست نابکاران خلق خود مقرر فرمود. او را بکشت. جناده ابن انصاری بیرون آمد. شانزده تن را بکشت. پس از وی پسرش امر ابن جناده به میدان رفت و میگفت: گلوی پسر هند را بفشار. و به جانب او روانه کن سواران انصار و مهاجرین را تا آنها که عهد پیغمبر زیر گرد و قبار نیزهاشان رنگین بود از خون کافران امروز هم رنگین شود از خون فاجران از خون مردمی پست که رها کردند قرآن را و در طلب آن خونها برخواستند که در بعد ریخته شد و پیوسته شمشیر زد تا کشته شد جوانی بیرون آمد که پدرش در هنگامه کشته شده بود مادرش زنی مردانه بود به او گفته بود پسرک من بیرون رو و پیش روی پسر پیغمبر جهاد کن حسین گفت پدر این جوان کشته شده و شاید مادرش از خروج راضی نباشد آن جوان گفت مادر مرا به خروج فرمود پس به جنگ آمد و میگفت امیرم حسین است و چه خوب امیری است شادمانی دل است که بشارت بخش و بیمده بود پدر و مادرش علی و فاطمه است مانند او می توانید کسی را نام ببرید چون خورشید درخشان صورتش و چون ماه تمام پیشانیش جنگ پیوست تا کشته شد سرش را جدا کردند و سوی لشگر حسین انداختند مادرش آن سر را برداشت و گفت نیکو کاری کردی پسرکم ای مایه خرمی دل و روشنی چشم من و سر پسر را به جانب مردی پرتاب کرد و او را بکشت و دیرک چادر برگرفت و بر آنها تاخت و دو مرد را با آن عمود بزد و بکشت. حسین او را فرمود بازگردانند و دعا کرد. بسا که این جوان پسر مسلم ابن اوسجی بود. قرآنی ترک از آن حسین بیرون آمد و او قاری قرآن بود. نبرد کرد و جماعتی را بکشت گویند هفتاد تن را و بیافتاد. حسین گریان به کنار رو آمد و روی بر روی او نهاد گلام چشم بگوشود و لبخندی زد و جان تسلیم کرد مالک زودان بیرون شد آنگاه ابو ساعدی بیرون آمد پس از وی ابراهیم ابن حسین اسدی کنیتش ابو اسحاق به مبارزت آمد و رجز خواند. هشتاد چهار تن بکشت آنگاه احمد ابن محمد هاشمی به مبارزت برخاست. چون همراهان حسین فزونی دشمن را برخیش بدیدند و دانستند که دفع شر از حسین و از خود نمی توانند در کشته شدن پیش روی او بر یکدیگر پیشی می جستند عبدالله ابن ارزه غفاری و برادرش عبدالرحمن نزد حسین آمدند و گفتند یا ابا عبدالله علیک السلام. دشمن ما را فرو گرفت و به تو نزدیک شد. ما دوست داریم پیش روی تو کشته شویم و جان پناه تو باشیم و شر از تو دور کنیم. گفت به بکما نزدیک من آیید. نزدیک او شدند. نبرد کردند و کشته شدند. هنزلت ابن از شبامی بیامد. پیش حسین ایستاد روی گلو را سپر تیرها و نیزه و شمشیرها کرده بود. فریاد میزد. ای قوم حسین را نکشید که خدای به عذابی شما را هلاک کند و هر کس دروغ بندد و افترا گوید زیان کرده است حسین به او گفت ابن اسعد خدای بر تو ببخشاید پنج دادن این سیه دلان آب در هاون سودن و آهن سرد کوفتن است این قوم پیش از این مستحق عذاب شدند آن وقت که آنها را به سوی حق خواندی و رد تو کردند و به خون ریزی تو و یارانت برخاستند، تا چه رسد به هنگام که برادران نیکو تو را کشتند، هنزله گفت درست گفتی فدای تو شوم آیا به جانب آخرت نرویم و به برادران نپیوندیم؟ گفت بلی سوی چیزی رو که برای تو بهتر است از دنیا و مافی خود شاهی که زبان نپذیرد پس گفت السلام علیک یا ابا عبدالله خدای تعالا بر تو و بر خاندان تو درود فرستد و میان ما و تو در بهشت آشنایی قرار دهد حسین گفت امین آمین. پس پیش رفت و قتال کرد تا کشته شد دو جوان جابری که پسر ام یکدیگر دیگر بودند و برادران مادری یکی سیف ابن حارس ابن سری و دیگری مالک ابن عبد ابن سری گریان نزد حسین آمدن به آنها گفت ای برادر زادگان از چه گریانید؟ امید دارم پس از ساعتی چشم شما روشن شود گفتند فدای تو شویم برای خیش گریه نمی کنیم بر تو می گریم که می بینیم دشمنان گرد تو را گرفتند و نمی از تو دورشان کنیم گفت ای برادر زادگان، خداوند شما را جزای خیر دهد بر این اصف و اندوه و جانبازی برای من بهترین جزا که پرهیزگاران را باشد. پیش رفتند و با آن حضرت بدع کردند. حسین گفت و خدا نگهدار شما با. کارزار کردند تا کشته شدند. آبس ابن عبی شبیب شاکری آمد و شوزب وی بود از بستگان بنی شاکر. آبست به او گفت، ای شوزب، چه در دلداری و چه خواهی کرد؟ گفت، چه کنم؟ نزد پسر دختر پیغمبر کارزار می کنم تا کشته شوم آبست گفت، من هم به تو همین گمان دارم. پس نزد ابی عبدالله رو تا تو را هم در شمار یاوران خیش بیند، چنانکه که غیر تو را دید، و من نیز به سبب تو آزمایش بینم و پاداش الهی در مصیبت تو از خدای چشم دارم. و اگر با من اکنون کسی بود نزدیکتر از تو، باز خوش داشتم او را پیش از خود فرستم تا در مصیبت او اجر یابم. که امروز روزی است که ما را باید تا بتوانیم در تحصیل سواب بکوشیم که فردا روز عمل نیست بلکه روز حساب است و بس. شوزب پیش رفت و با حسین وداع کرد و به میدان آمد و نبرد کرد. آبس ابن عبی به عبی عبدالله گفت به خدا قسم روی زمین خیش یا بیگانه نزد من گرامی و محبوب تر از تو نیست و اگر می توانستم کشته شدن را از تو دفت کنم به چیزی عزیز و محبوب تر از جان خودم دفت می کردم السلام علیکه یا عبا عبدالله خدا را گواه می گیرم که من بر راه تو و پدرت میروم. با شمشیر آخده به جانب آنان تاخت و نشان زخمی بر پیشانی داشت مردی از بنی عبد از همدان که او را ربی ابن تمیم می گفتند و آن روز در کربلا حاضر بود گفت من آبس را دیده بودم دلاورترین مردم بود گفتم ای مردم این شیر سیاه است. پسر عبی شبیب کسی به مبارزه او نرود و او فریاد میزد. آیا مردی هست؟ آیا مردی هست؟ عمر سعد گفت از هر طرف سنگ ریزان کنید چون چنین دید زره و خود بیافکند. آنگاه حمله کرد به خدا سوگند دیدم بیش از دویست مرد را پیش کرده بود اما آنها بروی احاطه کردند و او را کشتند سر او را در دست چند تن مردم دیدم هر یک میگفت من او را کشتم تا نزد عمر سعد آمدند. او گفت مخاسمه نکنید که یک نفر او را نکشت اصحاب در پی یک دیگر می آمدند می کردند و می گفتند السلام علیک یبن رسول الله حسین جواب می داد علیک السلام ما در پی شما می رسیم. و این آیه تلاوت می فمنهم فمن هم من قضا نحبه و منهم من ینتظر من و ما بدلو تبدیلا به پیش باز آهن رفتند و سینه ها نیزه و روی ها را دم شمشیر دادند امان میدادندشان نمیپذیرفتند مال بر آنها می داشتند سرباز میزدند میگفتند اگر حسین کشته شود و چشمی از ما در کاسه بگردد بهانه ما پیش رسول خدا چه باشد همه کشته شدند حسین گفته بود اصحابی با وفاتر از اصحاب خود ندیدند قلام عبدالرحمن ابن عبدالربه انصاری در کربلا حاضر بود. چون افتادن یاران حسین بدید، به و ایشان را به جای گذاشت و جان به در برد. دیگر مرقع ابن سمامه است بر سر زانو نشست و هر چه تیر در ترکش داشت بینداخت. چند تن از کسان وی نزدیک او آمدند و امانش دادند، بردندش. با عمر ابن سعد نزد عبیدالله زیاد رفت. و قصه او بگفت عبیدالله او را به زاره تبعید کرد و بعضی گویند به ربزه او بدانجا بود تا یزید بمرد و عبیدالله به شام گریخت مرقه به کوفه بازگشت دیگر از نجاتی یافتگان عقبت ابن سمعان است او قلام رباب دختر امرال قیس کلبی همسر حسین است که مادر سکینه بود چون او را دستگیر گیر کردند عمر صد به او گفت تو کیستی و اینجا به چه کاری؟ گفت من بنده مملوکم دست از او بداشت و رها کردش دیگر زحاک ابن عبدالله مشرقی است زحاک ابن مشرقی گفت وقتی سپاه عمر اسب های ما را پی میبریدند من اسب خود را در یکی از خیمه های اصحاب در وسط سراپرده ها پنهان کرده بودم و پیاده جنگ میکردم. و پیش حسین دو مرد را بکشتم دست یکی را بینداختم، و چند بار حسین به من گفت دستت خوش مباد خدای دست تو را مبراد و از اهل بیت پیغمبر تو را جزای نیکو دهاد، چون دیدم اصحاب حسین همه کشته شدند و لشکر یکسره به او و اهل بیت او روی آوردند و هیچ کس نماند مگر سوید ابن امر و بشیر ابن امر گفتم <تصفح> یبن رسول الله یاد داریان پیمان که با تو کردم و گفتم تا مقاتلی باشد من هم از تو دفاع کنم و چون هواداری نبینم اجازه دهی مرا که بازگردم گفتی چنین باشد؟ گفت راست گفتی اما چگونه توانی رست از دست این مردم اگر توانی تو را آزاد کردم چون مرا رخصت داد اسب را از خیمه بیرون آوردم و برنشستم و اسب را به مهمیز برانگیزدم تا پای بجست و خیز گرم کرد به میان لشگر زدم راه گریز برای من باز شد تا از صفوف بیرون شدم پانزده مرد در پی من افتادند تا به شفیه رسیدیم دهی نزدیک فرات چون به من رسیدند روی به سوی آنها بگردانیدم کسیر بن عبدالله شعبی و ایوب بن مشله خیوانی و قیس بن عبدالله مرا شناختند و گفتند این پسر عم ما زحاک بن عبدالله مشرقی است شما را به خدا قسم که دست از او بدارید ستن از بنی تمیم با آنها بودند گفتند برادران خیش را اجابت می کنیم و آن حاجت که خواستند برمیآوریم دست از صاحبه ایشان باز میداریم. اینها که چنین گفتند دیگران هم پذیرفتند و خدا مرا برهانید